اتصال به کالبد درونی لطفا همین حالا امتحان کن شاید بهتر باشد برای این تمرین چشمان خود را ببندی. بعدها وقتی که در بدن خیش بودن برایت آسان و عادی شد، بستن چشم ضرورتی ندارد. توجه خود را به درون بدن خود معطوف کن. بدن خود را از درون احساس کن. آیا زنده است؟ آیا حیات را در دستها، پاها، شکم و سینه خود احساس میکنی؟ آیا می توانی آن نیروی لطیف و ظریف را احساس کنی که همه اندام تو را فرا گرفته است و به تمام اعضای بدن تو و تک تک سلول‌های آن زندگی می‌بخشد؟ آیا احساس می‌کنی که این انرژی میدانی واحد و یک پارچه است؟ برای چند لحظه توجه خود را به کالبد درونی خیش معطوف کن. درباره آن فکر نکن. احساسش کن، هرچه بیشتر توجه خود را معطوف کالبد درونی خیش کنی، آن را شفافتر و نیرومندتر احساس خواهی کرد. ممکن است احساس کنی که بدنت نورانی شده است، گرچه این احساس میتواند کمک کند تا تصویر کاملا متفاوت از تصویر پیشین از بدن خود داشته باشی، اما توجه خود را از درون خیش منصرف نکن. تصویر هرچه میخواهد می‌خواهد باشد زشت یا زیبا مانع نفوذ ژرفتر تو به ساحت حقیقت خیشتن می‌شود احساس کالبد درونی بیشکل است و نامحدود و اسرارآمیز این احساس همواره ژرفتر از پیش خواهد شد در این مرحله اگر نمی‌توانی احساسی عظیم داشته باشی نگران نباش به هر میزانی که میتوانی احساس کن شاید فقط احساس کنی که دست ها یا پاهایت مرمور می شوند برای این مرحله همین کافی است. فقط روی احساس خود متمرکز شو بدنت به تدریج زنده و شاداب می شود بعدها بیشتر تمرین خواهیم کرد حالا چشمان خود را باز کن اما حتی اگر به اطراف خیش نگاه می کنی توجه خود را از میدان انرژی درونیت قطع نکن کالبد درونی تو آستانه صورت فیزیکی تو و ذات حقیقی توست هرگز تماس خود را با آن قطع نکن دگرگونی از طریق بدن چرا بعضی از مذاهب بدن را محکوم یا نف کردند به نظر می رسد بسیاری از سالکان طریق معنویت بدن را مانع سلوک یا پرداختن به آن را گناه تلقی کردند باید پرسید چرا فقط تعداد اندکی از سالکان به مقصد می رسند در سطح بدن انسان به حیوانات بسیار نزدیک است در این سطح انسان نیز مانند حیوانات تجربه هایی دارد از قبیل لذت درد، تنفس، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، میل به جفت پیدا کردن و تولید مثل کردن و البته تولد و مرگ. انسان مدتی طولانی پس از حبوط خود از عالم وحدت به عالم وهم و کسرت ناگهان بیدار شد و خود را در بدن مادی و حیوانی خیش دید. و این موضوع برای انسان بسیار ناراحت کننده بود. برای انسان پذیرش این حرف که خود را گول نزن تا از جنس حیوانی بسیار دشوار بود. انسان خود را بره ندید و ترسید. نفی ناآگاهانی بدن از همان ابتدا دامنگیر انسان شد. تهدید که ممکن است غریزه بر انسان چیره شود و او را به مرتبه ناآگاهی محض برگرداند بسیار جدی بود شرم و تابوها پیرامون بعضی از اعضای بدن شکل گرفتن به ویژه اعضای جنسی نور آگاهی انسان هنوز آنقدر پرفروغ نبود که با طبیعت حیوانی خود دوست شود آن را نافی نکند و حتی از آن بهرهمند شود چه برسد به اینکه به اعماق آن برود و ذات الوهی نهفته در آن را همچون گنج واقعیت در دل ویرانه اوهام کشف کند بنابراین او همان کاری را کرد که باید میکرد او از بدن خود کناره گرفت او اکنون خود را دارای بدن میدید نه عین بدن با ظهور ادیان این جدایی از بدن شکل باور پیدا کرد تو بدن خیش نیستی آدمهای بسیاری چه در شرق و چه در غرب کوشیدند خدا رستکاری یا روشن شدگی را از طریق نفی بدن بیابند این نفی خود را در شکلهای نفی لذتهای بدنی و بویژه لذتهای جنسی اجتناب از قضا و ریاضت‌های گوناگون و رحبانیتها جلوهگر ساخت بعضیها حتی بدن خود را شکنجه میدادند زیرا آن را هجاب ملاقات خدا تلقی میکردند در مسیحیت به این کار ریاضت جسم میگفتند دی نیز با فرو رفتن در عالم خلسه از بدن خیش فرار میکردند و بدینسان در جستجوی تجربه های غیر مادی بودند در اصل ما نیز هستند کسانی که در این وادی سرگردانند. گفته میشود حتی بودا نیز به مدت شش سال بدن خیش را نف کرد و ریاضت کشید اما سرانجام دریافت که با نفی بدن نمیتوان به روشنی رسید و بنابراین از این کار منصرف شد اتفاقا او وقتی به روشنی رسید که بدن خویش را همچون موهبتی عظیم پذیرفت حقیقت آن است که تا کنون کسی از راه نفی بدن یا جنگ با بدن به تجربه های آنچنانی دست نیافته است گرچه ممکن است این تجربهها برای تو جاذبه داشته باشند و تصویری از رهایی از عالم ماده ترسیم کنند اما در انتها باز باید به بدن خیش برگردی به جایی که استحالی حقیقی در آنجا اتفاق میافتد دگرگونی از طریق بدن اتفاق میافتد نه با اجتناب از بدن و نفی آن به همین دلیل است که استادان واقعی سلوک معنوی هرگز نفی بدن و ریاضت را توصیه نکردند درباره بدن از آموزههای های فقط پارههایی باقی مانده است مانند این گفته مسیح که تمام بدن تو سرشار از نور خواهد شد یا استورههایی مانند اینکه که مسیح هرگز بدن خیش را ترک نکرد بلکه با بدن خیش اروج کرد هیچکس به خود زحمت نداده است تا معنای باطنی این آموزه ها را بفهمد در عوض باور به اینکه تو بدن خیش نیستی همه جا شایع شده و موجبات نفی بدن یا گریز از بدن را فراهم آورده است به همین دلیل سالکان بسیاری از تحقق آرمان های معنویشان محروم ماندند و به مقصد نرسیدند آیا ممکن است آموزه های گذشتگان را که بدن را محترم و مختنم شمرده اند دوباره پیدا کنیم یا اینکه که بر اساس مچون ای که در دست داریم آنها را بازسازی کنیم؟ نیازی به این کار نیست همه آموزه های معنوی خواستگاه مشترکی دارند به این معنا هم باره یک حقیقت است که در استادان معنوی گوناگون جلوه می کند من یکی از آنها هستم و تو هم اگر به ذات علوهی خود برسی یکی از آنها خواهی بود راه رسیدن کالبد درونی است گرچه همه آموزه های معنوی از یک سرچشمه جاری میشوند اما وقتی بیان یا نوشته میشوند دیگر چیزی نیستند مگر مجموعه ای از کلمات و کلمه چیزی جز نشانه نیست همه این آموزه ها نشانه هایی هستند تا ما راه بازگشت به سرچشمه را پیدا کنیم پیش از این درباره حقیقتی سخن گفتم که ساکن کالبد بد درونی توست اکنون آموزه های استادان معنوی را برایت خلاصه می کنم. بنابراین نشانه دیگری پیش روی تو میگذارم. لطفا هنگامی که به آن گوش می سپاری یا آن را میخواانی کال بد درونی خود را احساس کن. تاب درباره بدن آنچرا که تو به عنوان تودهی متراکم درک می کنی و بدن مینامی بدنی که در خوش بیماری، پیری و مرگ می شود هم واقعی نیست تو نیستی به تعبیر رومی نیسته هست نماست سوء تعبیر تو از واقعیتی بنیادین است که نه به دنیا می آید و نه می میرد این سوء تعبیر ذهن توست ذهن تو به دلیل محدودیت هایش و قطع بودن رابطهش با هستی مفهوم انتظایی بدن را می تا شاهدی باشد بر باور باطل جدایی پدیده ها و امور و نیز توجیهی باشد برای ترس های خود ذهن اما روی خود را از بدن خیش بر زیرا در این بدن که نماد ناپایداری، محدودیت و مرگ است شکوه واقعیت بنیاد و نامیرای تو قرار دارد برای یافتن حقیقت بیرون از خود را جستجو نکن زیرا نمیتوانی حقیقت را در جایی جز در درون کالبد خیش پیدا کنی با بدن خیش ستیزه نکن زیرا با واقعیت خود ستیزه میکنی تو کالبد خود هستی بدنی را که میبینی و لمس میکنی فقط قشری نازک است زیر این قشر نازک کالبد نادیدنی تو نهفته است از طریق کالبد درونی است که با آن یگانه لمیلت و لمیولت نامیرا و جاودان حاضر اتصال میابی از طریق کالبد درونی است به جاودانه با خداوند یگانی در درون ریشه بگستران کلی <Loges> اتصال پایدار با کالبد درونی است اینکه که همیشان را احساس کنی این اتصال به سرعت جرفا پیدا می کند و زندگی تو را دگرگون می سازد. هرچه بیشتر آگاهی را به کال بد درونی خیش بفرستی، ان را پر فروختتر میسازی. در این سطح بالا از انرژی، از هجوم نگرش و خیلاتهاهای منفی در امان میمانی. آنگاه وجود تو شرایطی را فراهم میآورد که متناسب با این سطح بالای انرژی است. توجه به کال بد خیش لنگری است که در لحظه حال افکندی. به سان در دنیای بیرون گم نمی و به اسارت ذهن خیش در نمی آیی. البته ممکن است هنوز فکرها، احساسات، ترسها و آرزوهایی وجود داشته باشند، اما آنها دیگر نمی توانند بر تو چیره شوند. نگاه کن و ببین در حال حاضر توجه تو به چه چیزی معطوف شده است تو مشغول شنیدن این جمله ها هستی توجه خود را روی این جمله‌هایی که میشه متمرکز کرده ای. تو همچنین نسبت به پیرامون خود آدم‌های دیگری که در خانه و غیره کمی آگاه هستی. بلاوه درباره آنچه میخانی مقداری تفسیر ذهنی نیز داری. اما هیچ کدام از اینها نمیتواند توجه کامل تو را به خود جلب کند. ببین با کالبد درونی خیش، در ارتباط هستی یا نه؟ مقداری از توجه خود را به درون معطوف کن. اجازه نده همه جریان توجه تو به سوی بیرون جاری شود. همه اندام خود را از درون به عنوان میدان انرژی احساس کن. تقریبا به این میماند که تو با همه اندام خیش مشغول شنیدن این حرف باشی. این تمرین تو در روزها و هفتههای آینده خواهد بود همه توجه خود را به ذهن و دنیای بیرون معطوف نکن با تمام وجود خود روی کاری که میکنیم متمرکز شو اما در عین حال کالبد درونی خویش را تا جایی که امکان دارد فراموش نکن ریشههای خود را از خاک درون بیرون نیاور آنگاه خواهی دید که چگونه آگاهی و کیفیت کارهایت متحول می شود هر کجا که در سفی ای و منتظری صف اتوبوس نانوایی پست و غیره از فرصت استفاده کن و کالبد درونی خیش را احساس کن بدین سان حتی انتظار در شلوغی های ترافیک نیز برایت لذت بخش خواهد شد به جای گریز از لحظه حال با احساس کالبد درونی ساکن لحظه حال باش هنر هشیاری نسبت به کالبد درونی به شیوه زندگی کاملا متفاوتی تبدیل می شود به حالتی از اتصال دائم با هستی. اتصال دائم با هستی به زندگی تو معنا و جرفا می بخشد. اگر در کالبد درونی خود امیگن ریشه داشته باشی نظارت بر ذهن راحتتر خواهد شد. به سان دیگر هر آنچه که در بیرون اتفاق می افتد، نمی تواند تو را بلرزاند سکونت در کال بد درونی شرط اساسی حضور است اگر حاضر نباشی اداره زندگی تو به دست ذهن می افتد آنچه در گذشته در ذهن تو ثبت شده است افکار و رفتار تو را دیکته خواهد کرد یعنی شرطی شدن های ذهن به تو میگوید به چه و چگونه فکر کنی به چگونه واکنش نشان بدهی البته ممکن است گهگاه از شر ذهن رها رهاشبی اما این رهایی دوامی نخواهد داشت به ویژه هنگامی که مصیبتی بر تو وارد بیاید و یا مانعی بر سر راحت قرار بگیرد انگاه واکنش شرطی شده ی تو بی اختیار خود به خود قالبی و برخواست از یک احساس نهفته خواهد بود ترس زندگی هرگز خالی از دشواری و مصیبتها نخواهد بود پس هنگام رویارویی با دشواری‌های زندگی فوراً به دنیای درون خود برو و تا جایی که می‌توانی روی میدان انرژی درون خیش تمرکز کن این کار فقط به چند ثانیه زمان نیاز دارد اگر تأخیر کنی به واکنش ذهنی عاطفی شرطی شده مجال می‌دهی تا بروز کند و زمام تو را در دست بگیرد به محض که تمرکز خود را به درون معطوف میکنی و کالبد درونی خیش را احساس میکنی بیدرنگ آرام و حاضر میشوی و آگاهی خیش را از چنگ ذهن میرهانی اگر در آن شرایط ویژه به واکنشی نیاز باشد آن واکنش از ژرفای تو برمیخیزد همانطور که روشنایی خورشید بینهایت بزرگتر از روشنایی شمع است بسیرتی که در هستی هست بسیار بیشتر از درک و فهم ذهن توست کالبد درونی تو دریاست و ذهن تو کوزه تا زمانی که با کالبد درونی خیش در ارتباط هستی به درختی میمانی که عمیقا ریشه در خاک دارد و یا به ساختمانی میمانی با شالودی عمیق و استوار مسیح حکایتی زیبا دارد دو نفر خانی برای خود ساختند یکی از آنها خانه خود را روی زمینی ماسه‌ای بنا کرد طوفان وزید و سیل آمد و خانه او را برد دیگری زمین را حفر کرد تا به سنگ و صخره رسید وانگا خانه خود را ساخت طوفان و سیل نتوانستن خانه او را ویران کند